حالا اجازه در مورد کشتی که بعضی میگیان که حالا بزرگیش اینقدر بوده، چند تبر بوده، چند هزار حیوان داخلش بوده، چند نفر بودن اینها که آمارهایی دارن در دا مورد کشتی نو میدهن خود دانشمندا در دا مورد کشتی نو میدن که کشتی اینقدر بوده، طول اردش اینقدر بوده، بزرگ کوچیکش اینقدر بوده، اینقدر از حیوانات بوده، اینها بودن حالا آیا در این مورد این بیستر روایات آیا اونها رو میشه تصدیق کار تصدیق نکرد؟ اینجا دو نقطه یا سه نقطه رو خوب توجه کنیم کسی داره از چیزی از گذاشته داره خبر میده حالا وظیفه ما در مورد این اخبار گذاشته چی هست؟ مثلا گاگای اخباراتی و ما مامیدان میگن که اگر در تهرات آمده در انجیل آمده ایس داستانهای رو از کتابهای گزاشتگان ناغل بی اگر نقل از کتابهای گزاشتگان شد در این صورت وظیف شعر ما کی از این اول این است که حدیث اسرحی بخاری انجا نبیم حضرت ابو حریر راویش هست نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیه فرسیده شد در مورد اخبارات خود یهود و نصارا بن اسرائیل فرمودند که لا و ولا نقذبه ما نه تصدیق میکنیم نه تکذیب میکنیم نه اینکه میگیم دروغ میگن نه میگیم می که می می راست میگن اگر درباره از تورات نقل میکنه یا از انجیل نقل میکنه مستقیم تکذیب و تصدیق کردن نیست مستقیم نیست الله حتما راست داره میگه یا دروغ داره میگه چرا چون اگر از تورات یا انجیل نقل کرده باشه اگر این روایت تحریف هست اونها تحریف شده باشه ما تصدیق کردیم پس ذوی داریم یه چیز دروغی را به الله نسبت میدیم و اینجا نباید این کارو بکنیم تصدیق جائز نیست و اگر دار این روایتی نقل میکنه تحریف شده هست تحریف شده تحریف شده نیست واقعیت اگر واقعیت ما سن دروغ میگه دارین انکار میکنی یک آیه اکصابه آسمانی را این هم جایز نیست پس که حال کتاب بر ما معلوم نیست نمی‌دانیم کتاب یک دست یماه تحریف شده از تحریف شده نیست اینجا وظیفه ما چی است وظیفه ما است که ما اینجا سکوت کنیم تصدیق هم جایز نیست تکذیب هم جایز نیست پس نابره این چیزهایی که میگن که داخل موزهای لاور یا, مو یا داخل موزهای خود ترکیه استانبول یا داخل تاشقان که قرآن دستیی حضرت عثمان بوده اینا موهای نبی کریم هست این لباس نبی کریم است اینا مامه هست آن به بیان است از این فرماتی است شکوت کنی تفسیر هم نگشاد نباشه و تجزیه هم نگشاد باشه آن دو الله علیه النهضت اول است نهضت دوم در مورد خود مثلا فن حدیث و تصدیقات همیشه در احادیث و در روایات به نکتهای اساسی اشاره میشه یعنی وقتی الله رب العالم داستان گذاشتگان در قرآن نقل میکنن یا نبی کریم داره یک چیز داستان جو بیان میکنه همیشه در بیانات نقطه مهم که نقطه که اونجا و عبرات همونه نقل میشه کل داستان نمیشه لیکن داستان بن اسرائیل کل قرآن نگاه کنه جا جا قرآن از بن اسرائیل و موسی و موساد خدا و صحبت میکنه اما جاهای محل استنباتات محل عبراتات همونجار اللہ رب العالمی ذکر میکنه کل داستان چگونه نیست. نبی کریم صلی الله علیه و وقتی که از دوزاش تعریف میکنه از حضرت موسی حضرت عیسی حضرت, حضرت نوح و باقی حضرت ابراهیم همون جاهایی که محل درستان محل ابراتن و مفیدن برای انسانها در همون جاهارو نبی کریم بیان میکنه که دست واشه کل داستان مهم نیست اونها بیان نمیشن پس برادرین داخل احادیث ها مثلا میبینی یک راوی میگه که در فلان اینقدر بودیم یک راوی میاد می اینقدر بودیم یک راوی می بین سورد بودیم در یک حدیث چندین اختلاف وجود داره فران برای باید فیم می کنن این ها چیز اختلاف داره احادیث هست فران نصب حدیث ذهنش محل اشکال میشه این آسان اینجوری نیست وقتی که در احادیث اختلاف لفظی وجود داره این است که در نقطه اصاسی حدیث کل روان مشترکه داستان اصبیش در این تعداد جداستان اصلی نیست زیاد توجه بخاطر هیچوش نکرده اکرمو مقصد اصلی میخواد پیغام اصلی رو بگیره منتقل کنم. در اونجا خیلی زیاد احتیاط میکنم و بعد اون رو نقل میکنن پس منابر این کشتی نو تقرامه دیکل خداو که واسمع الفلک درستون کشتی را جلویم با حالا چجوری بود نقش آن رب بر آیند بشد؟ آتالین وش بش تالین دار. اما چقدر بود؟ چقدر نبود؟ احادیث مختلفی اماده چند حیوان داخل را بود. اماده، اما قطعاً که این قادر بودن قطعاً هیچ کس نمی‌دونه. وقتی قطعاً نبی کریم بیان نکرده و چیزهای غذاشته فقط راه حلش بسیار وحی الهی هست. چیزت مشخصه. برای فهمیدن وید هست و توحینا نامده اینجا دیگه نیازی نیست ما بیان عارض طول و بزر بزرگ بزرگی کوچکی شو با خود میقیاس های فکری درست کنیم در ای این اینها و تصدیق اینها ضروری هم نیست اینجا نقطه سوم در مورد علوم بگم کل ilmu ها داخل دنیا می آیند علمی که می آید خود ilmu ها دا مثلا دانشمندان دا چه جور کشف میکنند کشفیات کشفیات دانشمندان از انسان باشه چندی مرحله داره مرحله اول مرحله وهمی هست تو ذهن دانشمه چیز خطور میکن در حاله وهم و هست بر این حاله وقتی ایک وهمی رو یا فرضی رو ارائه کرد قبول کردن فرضیه فرضی اون برای انسان ضروری نیست قبول بکنه این روی فرضیه ذهنی خودش کار میکنه کار میکنه کار میکنه ایسا نتایج اولی رو نیبینه وقتی نتایج اولی رو میشه نظریه بارو توان فکر خود کار کرده یه شرایط نظریه. هنوز انتستیج ضروری نیست، استیج جایز نیست حالا. دوباره کار میکنے کار میکنه نظریش نتایج مثبتی میبینی. ما بیگی از زن زنده شده، یعنی گمان غالب شده حالا کین داره جواب میده. مرحله سوم که پیش آمد مرحله سومش جوابمون، نتایج اول ظاهر شدند. لغت ظاهر شد علم. بیگ هالیک دیگه نشد و یک ایل بی. وقتی ایل شد و به اثبات رسیده، انکارش درست نیه انکار حالا گه. نباید اینطور انکار بکنی. چون حالا ثابت شده با یه تهیهات درست وقتی آمد، اونجا انکار میکنیم. پس وظیفه به صورت است.